شنوندگان گرامی، در مطبوعات در مورد مرحله آینده مذاکرات این آوازه ها داغ است که این مرحله نهایی می باشد و در آینده نزدیک به اساس یک توافق بخشی از عساکری خارجی از افغانستان بیرون می شوند و بر آتش بس نیز توافق صورت میگیرد. در مورد این آوازه و موضوعات دیگر بو عزوی تیم مذاکراتی امارات اسلامی محترم مولوی عبدالسلام حنفی مصاحبه کرده ایم که توجه شما را به آن جلب مینماییم محترم حنفی صاحب اگر در موردی مرحله آینده مذاکرات معلومات بدهید اگر این مرحله مذاکرات کامیاب شود و شما به نتیجه برسید چی دست خواهید داشت؟ بسم الله الرحمن الرحیم نحمده و نصالی علی رسولی الکریم در پاسخ این سوال شما باید گفت که در صورت که مذاکرات ما به موفقیت خاتمه پیدا کند انشاء الله تعالی مردم مجاهد و ستمدیده افغانستان دستاورد بزرگی به دست خواهد آورد اولین آورد امارت اسلامی افغانستان این خواهد بود که اشغال مکمل خاتمه پیدا میکند و همه نیروهای خارجی همه از امریکایی و نیروهای ناتو همه خاک افغانستان را ترک خواهند کرد. اینطور نیست که یک تعداد محدود از نیروهای خارجی افغانستان را ترک میکنند. بلکه در صورت موافقتنامه همه نیروهای خارجی از زمان زمان توافق شروع و در یک تایمی که به موافقت می رسیم در, امو در امو زمان همه نیروهای خارجی خاک افغانستان را ترک می و مکمل اشغال انشاء الله تعالی ختم می شود و نیروهای خارجی همه از افغانستان میبرایند این یک دستاورد بزرگ از برای مردم مجاهد افغانستان و مخصوصا برای مجاهدین امارت اسلامی افغانستان خواهد بود در مطبوعات این ها داغ است که در آینده نزدیک شماری از عساکر خارجی از افغانستان خارج و بر آتش بس توافق می شود اگر در این مورد معلوماتتان را با شنوندگان شریک کنید که پس از توافق آیا تمام عسکری آمریکایی از افغانستان خارج می شوند و یا بخشی از آنها و معلومات واقعی در مورد آتش بس چیست در پاسخ به این سوال شما باید گفت که در صورت توافق به یک تایم تیبل و یا تقسیم اوقات خروج نیروهای خارجی و اعلان آن به حضور شاهدان بین المللی همه نیروهای خارجی خاک افغانستان را در ظرف مدت تعیین و توافق شده ترک خواهند کرد و بعداً ما به بود داخلی قضیه افغانستان که مذاکرات بین افغانی است داخل خواهیم شد و در آن صورت به همه موضوعات داخلی از قبیل تدوین قانون اساسی نظام اسلامی اصلاحات و امنیتی و مسئله آتشبس دائمی صحبت خواهد شد بعد از توافق بر همه مسائل اختلافی دیگر به جنگ ضرورت باقی نمی و صلح دائمی در کشور عزیز ما برقرار خواهد شد و مردم مظلوم و رنجدیده ما بسوله و آرامی زندگی خود را پیش خواهند برد حنفی صاحب این مذاکرات در حال جریان دارد که وقت نتیجه گیری مبارزه 18 ساله امارات اسلامی افغانستان و مبارزه 4 ساله مردم این کشور است شما در عرصه مذاکرات با توجه به منافی اسلامی جهتهای شرعی و منافی ملی چقدر از دقت کار میگیرید اگر جزئیات را در این مورد با ما شریک بسازید الحمدلله تیم مذاکره کننده ایمارات اسلامی افغانستان متشکل از علمای جید و اشخاص نخبه و صاحب تجربه است ما هر موضوع را اولا در قالب شریعت اسلامی سنجش میکنیم و بعدا در چوکات منافع ملی و اهداف ایمارات اسلامی افغانستان کلا سنجش میکنیم و در صورت عدم مطابقت ما قطعا جزترین موضوع را که به شریعت اسلامی مطابقت نداشته باشد و یا به منافع ملی ما مطابقت نداشته باشد و یا به اهداف و مقاصد ایمارات اسلامی افغانستان تطابق نداشته باشد ما قطعا او را قبول نمی و نمیپذیریم و به همه مجاهدین و منسوبین امارت اسلامی افغانستان و با مردم سلحشور و رنجدیده مسلمان افغانستان کلن اطمینان می دیم که انشاءالله مطمئن باشن ما هر موضوعی را که به توافق میکنیم اولا او را به قالب شریعت اسلامی به منافی ملی و به اهداف و مقاصد امارت اسلامی افغانستان مطابقت نداشته باشد قطعا او را ما نمی پذیریم. باید همه از این مطمئن باشند. شما همواره اید که با اداره کابل مذاکرات نمی کنید. اکنون که سخن از مذاکرات بینال زده می شود، مطلب این چی است؟ آیا با اداره کابل نیز مذاکرات صورت میگیرد؟ اگر موقف امارات اسلامی را در این مورد روشن بسازید؟ و در جواب این سوال شما باید گفت که بعد از توافق با آمریکایی ها ما به مذاکرات بین المللی داخل می شویم اداره کابل هم من حیث یک جهت و من حیث بغون اشتراک کرده می تواند نه من حیث حکومت همچنان که در کنفرانس مسکو و در کنفرانس من حیث یک جهت اشتراک نموده بودند